حکایت سالی که محمد خارعزم شاه رحمت الله علیه با خطا برای مسلحتی صلح اختیار کرد، به جامعه کاش در آمدم. پسری دیدم به خوبی در قایت اعتدال و نهایت جمال، چنان که در امسال او گوگند، معلمت همه شوخی و دلبری آموخت. جفاب و ناز و عطاب و ستمگری آموخت من آدمی به چنین شکل و خوب و قد و روش ندیدم مگر این شیوه از پری آموخت مقدمه نحو زمخشری در دست داشت و همی خواند. زر و زیدون امرن و کان المتعدی امرن گفتم ای پسر خارزم و خطا صلح کردند و زید و امر را همچنان خصومت باقی است، بخندید و مولدم پرسید. گفتم خاک شیراز، گفت از سخنان سعدی چه داری؟ گفتم بلی تو به نحوی یسول و مغازبن، علیه کزیدن فی مغابلت الام. علا جر زیلن لیس یرفه و او، فهل یستقیم و من عامل الجر. دختی به اندیشه فرو رفت و گفت، قالب اشعار او در این زمین به زبان پارسی است، اگر بگویی به فهم نزدیکتر باشد، کلم من ناس علا قدر گفتم طبع تو را تا هوس نهو کرد، صورت صبر از دل ما محف کرد، ای دل اشاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو با امر و زید، بامدادان که عزم سفر مسمم شد، گفته بودندش که فلان سعدی است، دوان آمد و تلتف کرد و تأسف خورد که چندین مدت چرا نگفتی منم، چرا نگفتی که منم، تا شکر قدوم بزرگان را میان به خدمتی بستمی گفتم، با وجود از من آواز نیاید که منم، گفتا، شود اگر در این خد چندی برا تا به خدمت مستفید کردیم؟ گفتم نتوانم به حکم این حکایت. بزرگی دیدمان من در کوه ساری، قناعت کرده از دنیا به قاری. چرا گفتم به شهرن در نیایی، که باری بندی از دل برگشایی؟ به گفتان جا پری رویان نقزند. چو گل بسیار شد، پیلان بلقزند. این بگفتم، و بوسه بر سر و رو دیگر دادیم و ودا کردی بوسه دادن به روی دوست چه سود هم در این لحظه کردنش بدرود سیب گویی وداع بستان کرد روگ از یزین نیمه سرخ و زان سو زرد این دم عمت یوم الوداع تاسفاً لا تحسبوني في المبتته منصفا